میخوام بدونم واقعا هدف فیلمساز از به هم چسبوندن این تیکه های نچسب چی بوده سلام و درود، بزرکت شما آقای کاغه مهربانی نظر تا فیلمی نایده بودم که به این صورت به شور مخاطب توهین کنه و هر نقصی که داره رو به عنوان یه برتری یاد کنه و فیلم سازش به یه که من دیدی دارم که بقیه ندارن هم تو شد هم فروش بود نرگی ناشی تو شای نیمیتی نرگی ناشی تو شای نیمیتی نرگی آقای مهربانی جز ارتباطش با صدای شهر تهران چیه؟ اما متوجهان شده چون جز موسیقی موسیقی که شورایجان و ریتمیکه از شهر تهران نداره ممنونم خیلی فیلی بود زن گفت این گفت من که رو اینکه که این فیلم یعنی هر چیزی اسمش آوانگارد نیست این اصلا فیلمی نبود که یعنی قابل به نظر من پخش باشه این یه تجربه خصوصی فکر میکنم جذابیتش فقط برای خود اون آدمه هیچ پیامی ندارم منی که این خیابون رو میشنسم میتونم بفهمم این جمهوری سر لالزاره این نمیدونم تو خیابون انقلاب این فلان این فلان سینماست ولی کس دیگه نمیتونه بفهمه شاید این فیلم هدفش این نبوده که به آدمانش بده که این بناها کجا دریله ولی به هر حال هر اثری که تولید میشه یه هدفی داره. هدف این فیلم چیه؟ چی رو می‌خواد نشون بده؟ یعنی برای چی نمایش عمومی داده میشه؟ اگر ارزشش برای خود اون مجمع‌دار که خب هیچ ارزشش برای خود مجموعه مجمع‌دار یعنی <تصفيق> این... که تراوش هر ذهنیو بهش بگیم آوانگارد به نظر من این اصلا نه ارزش هنری داره یعنی فقط یه چیزی برای خود اون کسی که این فیلمو ساخته ارزش منده برای کس دیگه. یعنی ارزشی نداره. دقیقا به نظر من که 5-6 تا فیلم دیدم این آها این ها این فیلم, فیلم به نظر من فیلمی که این مسیر هر روزهی مثلا منه این فیلم هایی که من بیشتر ساختمان رو میشه یعنی من میتونم گوشیمو رو کنم بگیرم دستم از مسیری که دارم میرم فیلم بگیرم خب این فیلم رو هم بدم بگم این فیلم آوانگارد نه صدایی نه تصویر واضحی نه اینکه که یه مثلا توی اون فیلم باشه نه من خودم رو الان اکس که مثلا تو موبایلم روزا میگیرم از ساختمونا اگه بذارم بقله هم فیلم کنم یه فیلم خیلی تر و بهتر و حتی مدرن تر از این فیلمی که الان دیدیم تولید بشه حداقل اون ساختمونایی که توشن همشون یه عرضش هایی دارن. از نظر خودم بازم از نظر خودم چون فیلم کارم این فیلم از نظر خود سازنده ارزش مانده سلام خسته نباشید که از مهربانی ممنون از دحمت که کش از تهران عزیز این فیلم رو کرده بودید فقط تنها مورد شاید بگیم مشکلی که به ذهن ما رسیدینه که ای پاشت در پخش این فیلم در رابطه با صداگذاری اون به تجدید نظری میشد تا مدت زمان یک ساعت و ای که ما توی سینماتیک نشسته بودیم از لحاظ صدا دوچار مشکل نمیشدیم خیلی ممنون خسته نباشید بچه های کنگوشه نشستن نشستن حال باقیه باقیه باقیه. جواب ندیده فایده نداری این میگیره آها میگیره فقط ریکوردره؟ من چه ها به هستم میمار و شهرساز آقای مهربانی اسم فیلمشون رو گوشتن ترایدوسکوپیک تهران البته من شخصم فکر میکنم که این فیلم راستی بهتر بود اسمش باشه آرکیولوژی مدرنیزم که در واقع به نمایش گذاشتن یک تناقض بزرگه آرکهولوژی طبیعتا مربوط به مطالعه و شناخت آثار گذشته دوره در حالی که مدرنیزم به گذشته نزدیک و یا حال تعلق داره بنابراین این تیتر من این تناقض بزرگ رو نشون میده و حالا توضیح میدم چرا ببینید اولا که این فیلم یه است از زیبایی ها از سندعتگری های توانمندانه گذشته نچندان دور که در واقع داشتن تک تک اونها باعث افتخار شهروندان شهرهای جهان می شود. و ببینید دستان شما کافیه به بد... کار های وارتان نمیدونم کارهای اپکار کارهای حتی دیگرانی که کمتر از این افراد شناخته شدن نگاه کنیم و در دوران بین آرت دکو ده و مدرریز متأخر در کار میکردند توجه کنیم که الان متاسفانه در اشقاش توجهی شده و در حال پودر شدن هستند و یا مورد تحاجم صداگرانه قرار گرفتن و بنابراین در این فاصله یعنی در فاصله که فیلم برداری شده و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم تخریب شدن و یا در حال تخریب شدن هستن در واقع این فیلم یک است به اعتقاد من از یک انتحار دست جمعی معمارانه و شهرسازانه و یا به عبارت دیگه چگونه میشه یک جامعه قادر باشه در واقع که با دست خود تیشه به ریشه خود بزنه و تاریخ شهری خود رو تخریب بکنه که ما الان مثلا بیاییم و با تنز از یک نوع آرکیلوژی مدرنی صحبت کنیم یعنی در واقع مطالعه و شناخته بازمانده خرابی ها خرابی هایی که ما خودمون با دست خودمون به وجود آوردیم. در جایی من نوشتم که تاریخ یک شهر را لایه‌هایی هایی که در زمان‌های مختلف روی هم انباشته می‌شوند تشکیل می دهند و تهران نیز علاوه بر سابقه تحماسپی و ناصری در نیمه اول قرن حاضر خوشیدی یکی از مدرن‌ترین این شهرهای خاورنی بودد و طبیعتاً این نظر را مجددن یک فاره دیگه در اینجا تکرار می‌کنم. این مطلب رو می‌خوام بگم فیلم کابی مهربانی در واقع است از یک جا به جایی فرهنگ شهری و روستایی ببینید اگر شما به تصاویر این فیلم نگاه کنید و اون رو با نقوش سرامیکی و یا نقاشی شده روی بعضی از دیوارهای مجاور ها و زیرگذرها که خاطره روستاها را در یاد رنده می کنند مقایسه کنیم به این جا به جایی فرهنگی پی می بریم که البته طبیعیه که تمام اخشار رو دربر نمیگیره ولی خب یک بخش مهمی از اون رو حتما دربر میگیره همون چیزی که مثلا در نمایش آری از هر گونه زیبای شناختی شهروندان نوکیسه که با استفاده از اناسار بستلاح هخامنشی، ساسانی و نوکلاسیکی به چشم میخورد در اینجا اونجا توجه میکنی و میتونیم اینها رو با این تصاویری که در این فیلم آورده شده مقایسه کنیم و در آخر صحبت میخوام به این مطلب اشاره کنم که این فیلم است از باقی مانده زیبایی ها و سندگری های توانمندانه که میتوان هنوز آنها را نجات داد و به عنوان ای برای نسل حاضر و نسل های آینده از آنها حفاظت کرد سلام عرض میکنم بنده سینا احمدی هستم من معمارم، حدود 15 سال من سابقه ساخت ویدیو دارم، ویدیوهای صنعتی، تبلیغاتی، از من تعداد زیادی ویدیو معماری تو این سال‌ها ساختم، بیشتر از فکر کنم حدود پنجاه تا ویدیو بوده، از ویدیوهای کوتاه 100 ثانیه‌ای تا مستندهای بلندتر، به خصوص در مورد معماری. در مورد این ویدیوی جناب کابه مهربانی، تهران کالیدو من ما جز اون دسته ای هستم که تصور می‌کنم که این ویدیو رو نباید دید. دلیلش هم در اینه، این دیدگاه جناب مهربانی رو من خب قبلا داستانش رو دیده بودم توی مجله، توی عرض که پریزنتشن های شکل دیگر و این دیدگاه بسیار قابل اعتناع و نقطه نظر بسیار جالبیه. خیلی، خیلی محتوام نقطه نظر است که ایشون داشتن و به نظر من، بسیار هم وقت درستی ارائه شده. زمان فعلی زمانی است که دقیقت ممار های قدیمیتر ما و افراد قدیمی‌تر از این نوع ساختمونش شاید خسته شدن دیگه. به دقت کنن از طرف دیگه می بینیم تو همین زمان نسل جدید تر خیلی به نظر میمثل علاقمند شدن به ظافت هایی که توی شهر وجود داره به گوشه هایی که تو شهر هست این دیده میشه که نسل جوان دنبال این دارند میرن و این به نظر من تو زمان خیلی خوبی حالا دقیقت از دید متخصص جناب مهربانی تونستن که این زرافت ها و زیبای های شهر ما رو ببینن و ارائه بکنن اما اشکالش این است حالا این ارائه توی مثلا مجله تو مجله معمار خیلی درجه یک بود و هم من و همه همکارانم وقتی دیدیم چون ما هم تو این مدت به این داستان فکر کردیم ولی هیچ وقت انقدر با دقت بهش نگاه نکرده بودیم هیچ وقت اصلا وقت این و در حقیقت همت اینکه این رو به این ترتیب تدوین بکنیم کسی نداشته تا حالا ایشون این کارو کردن اما در مورد ویدیو داستانی که فرق میکنه این ویدیو به خصوص تصوار معین است که به خصوص از نظر تکنیکی فاقد شرط لازمه برایش نمایش عمومی حالا این شرط چی هست؟ ببینی این ویدیو همینطور که جناب مرحبانی توی صحبتشون میگم میگن میگن از دریچه چشمشون دیده شده و دقیقت همونطور که دیدن این رو ساختن خب این یه خلوصی به کار میده یعنی این یه جور واسطه رو حذف میکنه از کار و باعث میشه که از این نقطه نظری این دید, دید جذابی بشه این تو شکی نیست اما یه مسئله هست یه ویدیو یه فیلمی که برای نمایش عمومی در نظر گرفته میشه باید حداقل یک حداقل استاندارد هایی رو شرایطی رو برای بلاس تکنیکی داشته باشه برای اینکه بیننده بتونه باش ارتباط بهتری برقرار بکنه. اینو مثلا بخوایم مثال بذاریم در زمین معماری که احتمالاً بیشتر مخاطبان ما هم اینجا معمار هستن مثلا فرض بفران یه دونه ساختمون شخصی وقتی یه نفر می سازه چه برای خودش چه برای مشتری دیگه یه ساختمون شخصی ویلایی در خارجشه توی زمین وسیع تقریبا به هر شکلی شما میتونید این رو طراحی بکنید. قوانینی نیست و پای شما رو بگیره و فقط کافیه که استانداردهای اولیه سازه تو شاید شده باشه که بالاخره سرپای خودش به ایست ساختم اما وقتی شما میخواید ساختمانو عمومی توی شهرطراحی بکنید حالا دیگه مخاطبین این ساختمون بهره بردارهای این ساختمون تعداد هم عموم هستن اینجا شما مجبورید استانداردهای رایت بکنید استانداردهای سازه که به کنار حالا مسائل تأسیساتی، سیرکولاسیون غیره شما باید استانداردهای آتش نشانی رایت بکنید قوانین شهرداری برش حاکم میشه دلیلش هم این است که مثلا باید ایمنی شو داشته باشه حالا اینا دیگه همه شرایطی است که یک محصولی وقتی مخاطبش عام میشه باید که اون شرایط رو داشته باشه این ویدیو کالیدوسکوپ به نظر من بلااست تکنیکی فاقد این استانداردها هست به همین دلیل تصور میکنم که حیف میشه و نمیتونه که اون مفهوم خودش رو درست به مخاطبش برسونه حالا البته این ظرافتی هم تو داستان هست ببینید کالیدوسکوپ که اسم این فیلم هست کالیدوسکوپ وسیله ای است که از سه تا آینه تشکیل شده این آینه‌ها منشور رو تشکیل میدن که یه تعدادی قطعات رنگی مثلا تای مشوره است وقتی شما رو می تصاویر می این رو میچرخونید تصاویری جذاب می‌بینید این جذاب بودن و تصاویر به دلیل نظم است که اون آینه ها دادن بهش اون تصاویر خودشون اون قطعات بیشکل رنگی خودشون همینطوری جذاب نبودن اون سه تا آینه نظم دادن به اینا و اون نظمه که جذابیت تصویر کالیدوسکوپ رو به وجود میاره حالا تو همین زمینه فرض بفرم مثلا ممکن بود که اگه بخوایم مثال رو ممکن بود که با وجود یعنی میشد با همین ترتیب خالص شهر رو دید همینقدر آسون و همینقدر بی و بدون در نظر گرفتن حالا یه سری مسائل تکنیکی ولی با یه کمی دقت بیشتر حتی میشد فقط با یه تدوین دقیق با یه تدوینی که اون نظم محکمی رو که تو کاردوسکوپ خوک فرماس به دلیل اون تا آینه موجود میشد که فقط با وجود یه نظمی توی تدوین یه نظمی که تزریق میشه از بیرون به این تصاویر خالص و بیواسته میشد این فیلم رو برای عموم در حقیقت جذابتر کرد و در نظر من این ویدیو در نهایت یک کمی حیفه که به دلیل بیتوجهی به مسائل تکنیکی مخاطب خودش رو از دست بده به دلیل اینکه که همطور که عرض کردم قبلا نقط نظر بسیار قابل توجهیه و در زمان بسیار مناسبی هم حرای شده کاش که میتونست در حقیقت نظر تعداد بیشتری از مخاطبین رو به خودش جلب بکنه کابه مهربانی در کن هر چیزی یا فیلم باشه یا نقاشی یا غیر, و غیر یه دو باش ارتباط برقرار میکنن خوششون میاد یه دم نمیکنن هیچ صد درصدی وجود نداره مثلا طراح ایتالیایی انتماری میگه که در کل اروپا شاید فقط سی هزار نفر باشن که مخاطب من میتونن باشن و هر موقع که خیلی تعریف شد ازم برمیگردم ببینم کجا اشتباه کردم بنابراین در مورد این موضوع خوش اومدن، تعریف خوش نیومدن از این چیزا چون تفسیرهای مختلفی داشته باشه نه من, من که خودم اصلا وقتش رو کار نبردم ولی توی یکی از سوالا بود مثل این اینکه اون از کجا اومده خب این در واقع نشون میده که اون فرد به خاطر سبک این یا حالتی که داشته فرض کرده که این باید شد آبانگاردی باشه خیلی جالب و عجیبه <تص> درستانه کسی نگفت که این آبانگارده اتفاقا شاید خیلی قدیمی باشه برای که شما اینو و رو، و کات و غیر و این چیزا رو توی فیلم های سامت اولیه و فیلمای دوره کانستراکتیویسم امدلاب روسیه آیزنستاین و اینا به وفور میبینیم <تصفيق> بله شده؟ بله اونا آبانگارد بودن ولی این هیچه ادعایی که مثلا این آبانگارد هست به نیست خب به علیقه هم چیز دیگه؟ دیگه؟ اون که مثلا عادت به این باشه که هر چیزی یه داستان داشته باشه و این عادت به این که در دبقی این داستان و این نریشن و این توضیحات و غیره اینا یه مانه میشن برای درک اون چیزی که واقعیت های هر موضوعی هر ساله یه فیلم یا نقاشی حالا من باز ببرمیدم به نقاشی مثلا خیلی به نقاشی ها می کنم. مثلا میگن این غروب آفتابه یا این گله آفتابگردون غیره و این چیزها اون نیست موضوع ما اینجا موضوع اون نقاشی اون در واقع ممکن یه معنی حتی ایجاد بکنه اون یه وسیله بوده درسته و برین ما هر چقدر این موانع رو کنار بزنیم اون موضوع اصلی اصلی بیشتر به ما نزدیک میشه. مثل عکاسی سیاسفیده. درسته؟ مثلا عکاسی سیاسفید فید یه همچین کاری میکنه یعنی با از بردن رنگ یک فیلتر در مثل فیلتر اونو از بین میبره و شما یه کمی معموستر میشه اصل موضوع براتون. سعی کردم که این هر تا... مجایی که میشه مستقیمتر و خالصتر و قابل تر باشه <تصفيق> یه نفر گفت جهز حالا بده به خشخاش خواهده اگه بایدم که بله جهز من دارم یه تشبیه میکنم نه که میدونم که جهز چشونه این چیزه. ولی چی هست این چیزا و شما دارم یه گروه جهز نیستن که اونجا دارن این کار رو بیکنن. ولی جاز از این نظر که نوت ق... ایمپرویزیشن میشه توش و نوت بعدی دقیقاً معلوم نیست چی هست ولی این صده ها بعضی وقتا به نظر میاد یه همه هم توش دارم مادر بدار های مرکز تهران صحبت میکنم شبا مثلا اگه به این سعادت آباد این صدا نیست خیلی مناطق خیلی آن بعد این صدای بوغا مثل اون شیبوقا و غیره رو یه تشبیه و نمیدونم هر چیزی رو باد خیلی به وضوح توضیح داد ل ل اگه چیزی روی روزی میخوایم گفتیم جلسه اصلا اگه چی باید مرسش یکی از کسی توفیرداش مایکل پیلز بود ساز ترشی که قراره اونجوری که خودش اعلام کرده در سال 2016 توی کونسلر هاوس ویان نشون داده بشه و ایشون اتفاقاً میگفت که صدا خیلی اون بلندی صدا خیلی خوب بود و شاید حتی حالا تا حد یکم با مزا بلندترم بود بهتر بود آخه یعنی اون به اصطلاح یکم شوکیه که بخواد بده اینا بره این صداییه که حالا با قبول اینکه تو فاز سینما کم بود زیاد بودام چیز میشد اینا این چیزی که هر روز در مواجهه با اون هستیم اون صدا نمیشه چیز خیلی جا مشکل بود اصلا بگیرین مثلا میومدن میپرسیدن که برچی و رو این،, این چیزا بعد گفتم چون که خیلیش اتفاقی بود اگه اون لرزشی تو دستو غیره اینا بود اینم جزء همون مسائلش بود چون که اینطوری نبود که با برنامه ریزی رفته باشیم و غیره اینا و از مستندیم مستندی هم خیلی ساختمان های مهمی اونجا هستن که دیگه وجود ندارن مثل سینما مایاک همطور که قبل گفتم اونجا کارکت میکنه توی سینما میری و الان فر... تصور کنید که اون اصلا نیست که شما حتی تو اتاق پروژیکشنش هم رفتین و حرکت دوربین هم باید وقت موقع زاویه پیدا میکنن شما اگه از یه در رو به جنگ عمودی ببینین که هست واقع باقی در واقعیت افوقی ببینین به طرحش بیشتر نزدیک میشین برای اینکه به عنوانی در رو نش. مثل یا یه پنجره یا غیره و این چیزا در واقع این یه کار ابسترکت ابسترکشنه تجویده که از طریق تجوید شما به اون اصل موضوع و قدرت فرمیه این ها نزدیک بشین و خب چون که یه نوع فیلم فیلمم هست حرکت هم نقش داره برای اینکه شما مثلا برعکس نقاشی مموری رو خیلی به صورت حرکت تجربه میکنه حرکت هم چیزی نیست که ما همیشه انتخاب میکنیم به ما تحمیل میشه سرعت را رفتنمون جایی که میستیم اینا اگه تو ماشین باشیم این چیزا خود اینام خود این حرکت‌ها به اصطلاح به نظر من یه مقدار منعکس میکنه. تجربه موقعی کردم تو شهر این قسمت های شهر هست و حال به صورت همطوری گفتم یه کلکسیونی بود که در حدود پنج سال اینطوری گرفته شده بود و در واقع چیز که من میخوام بگم اینه که حتی در برای تهران نیست میدونین شما میتونید به فرمای مختلف باز تفسیر کنین اینا مثلا ممکنه اصلا در برای هم نباشه ممکنه در بارد وضعیت فعلی محیط باشه. یا. بر... نمیدونم هر که خوشش اومد خوشش اومد یا درک کرد من تا یه چیزی هم که باید گفتیم این در واقع برای مخاطب ایرانی زیاد نبوده برای اینکه همونجوری که گفتیم آماده شده بوده برای و اونجا این تشخیص بود که موقعی که در یه فضای گالری نشون داده میشه مثلا هرکس که بیاد حتی چند ثانیه چند دقیقه اگه میخواست بیشتر بمونه یک معماریه با کیفیت رو اونجا میدید که انتظار نداشت که اصلا در تهران موجود باشه وجود داشته باشه وینیز <بزنز> مشخصا ابزوری مادرنیزم بود مادرنیزم انظر زمانی اول اواایل تا 1970 بعد گرایش پیدا میکنه به پست مدرن و اینا در چارچوب زمانی قرار می گرفتن ولی در کل مثلا دو گروه ساختمون میشه تشخیص داد مثلا ساختمونای دولتی و بزرگتر و رسمی و مثلا با پرستیج ملی و غیره و این چیزها هست یکی هم ساختمونایی که کوچه ها رو می سازن. در هر شهری کوچ ها رو می سازن میسازم اون متنو و این چیزایی ساختن فرمنتهایی که توی این فیلم هست از اون گروه دومه یعنی که اونایی که همه کوچ ها رو می ساختن یعنی معماری که بتونه کوچه ها رو یعنی جایی که مردم زندگی میکنن زندگی روزمهارشون دارن به اون کیفیت بده اون یه معماری قویه ولی ماگه ما اون رو فراموش بکنیم یعنی اون یه چیز مثل الان مثلا بساز بیفروشی خیلی چیپ خیلی چیپه و فقط تمرکز کنیم رو چند ساختمون بزرگ مثلا تبلیغ ملی یا دولتی یه سری از این چیزها این یکی گرایش, این گرایش بود که انتخاب کرده بودم و چون که در این فابریک در این متن که بیشتر اوقات مردم صرف میشه تجربه هاشون و همطوری گفتم بعضی از اون ساختمان رو حتی باردن نمیشتون آدم بشه یعنی به نظر من بس در مورد در میماری فقط نباید درباره اون گروه ساختمان باشه اونام شاید لازم باشن. کسی چیز نداره ولی فقط در مورد اونا صحبت. در مورد همین محیطایی که ما هر خب روز همه توش زندگی میکنیم زیاد دغدغه آنچنانه وجود نداره. ولی این دوره اینطوری بوده که یک معماری یا یه اصولی بوده، یه معماری بوده که همین ساختمان های معمولی که مردم توش زندگی میکردن خیلی کیفیت معماری نداشتن و بعضی وقتا دییتلاشون در به نظر من شاهکار بوده. خب این تجربه همه رو روزانه همه رو غنی میکنه و این یه فقط کلکسیون دکلکس.